مراج نصیری دوست امیر محبی سلام حضورت شاید با معرفی امیر محبی بوده اما قطعاً ادامه دادنت اینجا فقط تلاش و زحمت خودت بوده مؤدب آروم با کمالات و با متانت و به دور از هر قاد کله کار کردی امیدوارم که برخلاف همسن‌ها تو این سن و سال خیلی زود به جایگاه واقعی دست پیدا کنی خیلی زود به چیزی که حقت دست پیدا کنی و لذت ببری از اینکه 17 18 سالگی رو برای شروع کار انتخاب کردی حتماً موفقیت جلوی راه شماست و خیلی راه همواری داره مطمئنم که تو هر جایگاهی قرار باشه چه تو این شرکت و چه خارج از این شرکت کار کنی موفق خواهی بود چون تو به دور از حاشیه داری زحمت میکشی، به دور از حاشیه داری کار کنی و این هنریه که خیلی از همسن و تو امروز اینو ندارن در وهله اول کنار خانواده شاد باشی در وهله دوم هم تا سالهای سال ما از همکاری با تو کیف کنیم